مردم دیده ما جز به برخط ناظر نیست دل سرگشته ما غیر تو را ذکر نیست اشک مهرام تبا فرمت می‌بندد گرچه از خون دل ریش دمی طاهر نیست بسته دام و قفس با چو مرغ وحشی طایر صدر اگر در طلبت طایر نیست آشق مفلس اگر قلب دلش کرد نسار مکنش عیب که بر نقد روان قادر نیست آقابت دست بدان سر به بلندش برسد هر کرا در طلبت حمت او قاسر نیست از روان بخشی ایسا نزنم دم هرگز زن که در روح فضایی چو لبت ماهر نیست من که در آتش سودای تو آقی نزنم توان گفت که بر دلم سابر نیست روز اول که سر زلفتو دیدم گفتم که پریشانی این سلسله را آخر نیست سر پیوند تو تنها ندل حافظ راست کیست آن کش سر پیوند تو در خاطرنی؟